خدا دکتر خدا هستم دکترای تخصصی سلامت باروری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم شهید بهشتی با مجموعه پادکست‌های آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک در خدمت شما بزرگواران هستم در این اپیزود میخوام در رابطه با روش‌های کنترل درد مادر صحبت کنم درد معقوله اصلی زایمان البته درسته که حضور یک مراقب یا مامای دلسوز موقع زایمان ضروری ترین وسیله حمایت روحی و روانی مادر است اما روش‌های دیگه‌ای هم وجود داره که به زن زاءو در هنگام زایمان کمک میکنه تا درد رو کمتر احساس بکنه. اغلب این روش‌ها باعث افزایش اعتماد به نفس و توانایی مادر در مواجهه با درد زایمان میشه. هر مادری در گذر از مسیر بارداری و زایمان به سوی مادر شدن نیازمند کمک افراد با تجربه هست تا قدرت و توان وی رو برای وزه هم به او بشناسوند. این موضوع خیلی مهمه چون که دیدگاه و انتظارات مادر از زایمان در چگونگی وزه حملش در آینده بسیار تأثیرگذاره. اگر مادر احساس بکنه که از لحاظ عاطفی و روحی حمایت میشه به راحتی با درد زایمان کنار میاد. ترسیم یک دورنمای غیر از زایمان به عنوان یک روند بلقوه خطرناک زمینه رو برای روی دادن اتفاقات نامساعد فراهم میکنه به طوری که مادر همواره با ترس از هر گونه خطر جانی برای خودش و جنینش وارد اتاق زایمان میشه همواره باید تایید و تاکید بشه که مادر باردار بیمار نیست و بارداری هم بیماری نیست هرچه مادر بیشتر نگرانی در رابطه با وقایع غیر مترقبه موقع وضع حملش داشته باشه آسیبهای بیشتری به اون وارد میشه اگر مادر بدون هیچ آمادگی قبلی و با ترس وارد اتاق زایمان بشه احتمال آسیب آسیبها هم به او بیشتر خواهد شد البته لازم به ذکر است که این استرس ها نیستند که همیشه آسیب به مادر میشن بلکه گاهن مشکلات طبی هم ایجاد میشن که متاسفانه غالب مادرای ما قدرت کافی برای مواجهه و نیز اطلاعات کافی را هم در رابطه با اونها ندارند اغلب مردم به سختی قبول میکنن که هر چیز بسیار دردناک یا طاقت فرسا مثل زایمان رو هم میشه با افسایش توان روحی و ذهنی به راحتی تحمل کرد اگر مادری ای فکر بکنه و به شرایط فعلیش بیاندیشه متوجه میشه که زایمان هم مانند بالا رفتن از کوه کار بسیار مشکلیه اما یه نکته اینجا وجود داره اینکه وقتی ما به پای کوه می رسیم هیچ وقت چشم هامون رو نمی بندیم و بالا رفتن از کوه رو نادیده نمیگیریم. بلکه به دنبال پیدا کردن راهی برای سعود و بالا رفتن از کوه هستیم اما چرا موقع زایمان زایمان رو نادیده میگیریم و به دنبال راه جایگزین زایمان طبیعی هستیم؟ باید راهکارهایی را پیدا بکنیم تا این دیدگاه منفی و انتقاد پذیر رو در مادرمون از بین ببریم این طرز تفکر که درد زایمان یک درد غیر قابل تحمل و آسیبزا هست رو باید در ذهن مادر کمرنگ کنیم و مادر باید بپذیره که مانند بقیه اتفاقات زندگی توانایی مقابله با درد زایمان رو هم داره کسب اطلاعات لازم و درست و همچنین دریافت حمایت عاطفی و ذهنی برای زایمان مادر آماده میشه. این آمادگی ها ای هستند که مادر کاملا واقع بینانه با درد زایمان روبرو میشه. زایمان یک پدیده فیزیولوژیکه که با درد زیادی همراهه و همچنین یک پدیده روانی، روحی و معنویه. درد زایمان یک درد جهانیه و بین همه زنان عالم مشترکه. زایمان میتونه نه تنها نقش از شناختی داشته باشه، بلکه اهمیت مادر رو در جامعه هم تحکیم میکنه. حقیقت اینه که زایمان با همه سختیها میتونه برای زنان آرامش بخش هم باشه. در فرهنگ های مختلف مفهوم درد زایمان متفاوت هستش. و افراد و زنان هم رفتارهای ناشی از دردشون در جوامع مختلف با توجه به الگوهایی که از جامعه اکتساب میکنند متفاوت هستش در. در بعضی از جوامع معتقدند که درد زایمان برای پاکی روح مادر از گناهان گذشته برخی دیگه هم معتقدند که درد زایمان فواید اجاب انگیزی برای روح و روان مادر داره در جوامع غربی هم معتقد هستند که درد زایمان بهایی هستش که مادر برای بچه دار شدن و مادر شدنش باید بپردازه. متاسفانه در جوامع انسانی نسبت به پذیرش درد زایمان تناقض وجود داره. اما یکم فکر کنید. چرا درد پاها در دوی ماراتون اشکال نداره؟ اما درد زایمان سخت و غیرقابل تحمله یا چرا درد شکم بعد از زایمان سزاریان اشکالی نداره اما درد زایمان رو نمیشه تحمل کرد. بسیاری از مادرها هر تلاشی میکنن تا با درد زایمان روبرو نشن به نظر میرسه که این درد زایمان نیست که غیرقابل تحمله بلکه این ترس از درد زایمان هستش که اون رو ملالاور جلوه میده در واقع این ملال بیشتر در زنانی دیده میشه که روشهای سازگاری با درد زایمان رو نیاموختند و از نظر روحی هم حمایت نشدند به نظر میرسه که اعتماد یک زن به قدرت خودش و اینکه میتونه با درد زایمان کنار بیاد بیشتر از هر عامل ای در ادراک دردش موثر هست دیکرید که یکی از بنیانگذاران مقابله با درد زایمان هست طوری رو بیام میکنه که میگه درد مادران ناشی از ترس اونها هست چرا که ترس باعث تحریک اعصاب سمپاتیک و در نتیجه فعال شدن انقبازات در عضلات حلقوی رحم میشه و در نتیجه این انقباضات خون رسانی به بخش بالایی عضل رحم کاهش پیدا میکنه و همین امر منجر به افسایش و ایجاد درد زایمان میشه نکته مهمی که وجود داره این هستش که ما انتظار نداریم که درد زایمان قد یا خفیف بشه. هرچقدر که زایمان پیشرفته تر میشه شدت دردها بیشتر و فواصل انقبازات هم کمتر میشه که این یک علامت مثبت هست. اما نکته جالب توجه تر این هستش که بدن در پاسخ به افسایش درد شروع به ترشوه اندورفین میکن. اندورفین مخدر طبیعی بدن هست و عاملی هست که دردهای زایمان رو کاهش میده و احساس بهتری رو در مادر ایجاد میکنه و افکار مثبت رو در ذهن مادر بالا می نکته مهم دیگه که در اینجا وجود داره این هست که باز هم متذکر میشم زایمان بیماری نیست و مادر باردار هم بیمار نیست ولی اغلب مردم با زن باردار مثل یک بیمار رفتار میکنه اگر مادر احساس ضعف و بیماری بکنه در عمل هم ضعیف و بیمارگونه رفتار میکنه وقتی مادر خودش رو بیمار تصور بکنه همه مسئولیتهای خودش رو به دیگری محول میکنه در حالی که اگر مادر خود رو سالم و سلامت بدونه میتونه با استفاده از قدرت درونی خودش با درد مواجهه پیدا بکنه و برای بهبود وضعیتش تصمیم بگیره و همین امر باعث میشه که مقابله او با درد زایمان بهتر بشه و توانش بالاتر بره اما اگر مادر در مقابله با درد زایمان احساس ضعف بکنه نمیتونه از توانایی های درونیش استفاده بکنه همونطور که قبلا هم گفتم باورها و اعتقادات شما در نحوه برخوردتون با در رضایمان بسیار مهم هست. باورهای مثبت حمایتی و باعث افزایش اعتماد به نفس در شما میشند. اما باورهای منفی اعتماد به نفس و در شما کاهش میدن نمونه از باورهای مثبت این که شما به بدنتون اعتماد دارید و اینکه به راحتی میتونید جنینتون رو به دنیا بیارید. و معتقد هستید به این که زایمان یک روند فیزیولوژیک و طبیعی هستش که به راحتی و با توانمندی لازم از احدش بر میاد. در مقابل افکار مثبت افکار منفی هم وجود دارد. افکاری مانند این که من از پس این کار بر نمیام. زایمان قطعا باعث نابودی بدن من میشه و من موجودی ضعیف و ناتوان هستم. به خاطر داشته باشید. که آنچه انجام میدید و آنگونه که انجام میدید باعث ایجاد یک تجربه شیرین و به یادماندنی یا تلخ و عذاب آور در شما میشه احساس رضایت و موفقیت عزت نفس و اتکای به خود را افسایش بدید و این تکامل و تعالی روحی برای مادر شدن شما و انجام وظیفه خطیر مادری بسیار مهم و ضروری است